الحمد <سؤال> لله الله الرحمن الرحیم الله و ملاکات بیسالون علی النبی، یا عمل اسالو علیه و سالی الله علی محمد و علی محمد كما سالیت علی ابراهیم و علی ابراهیم مجد. درود روز جمعه دعمر درود شریف کل طنبر درود شریفی که الله مسولی علی محمد و علی محمد کما سالیت علی ابراهیم و علی ابراهیم عزیز در هفته گذشته ما شما دست داشتیم درباره شرایط لباس پوشیدن اسلامی و تا قسمت تر ازو لباس ها بحث کردیم که اسلام چه قسمی لباسها را اجازه می و شرایط لباس اسلامی چی هست و هم نقاط سره که باقی مونده بود از درس که حرام بودن لباس شهرت خب هیچه در لباس شهرت گفتیم که اه اه در لباس شهرت یکی خواهم بسیاری کسا هست مثلا لباس را که زیاد مشکول است و این به خاطر افتخابی باشد عزیزگاه دینی به قدس اسلام پوشیدن لباس زیبا باشه خوبش باشه خدا مشکل نداره آنچه که در اسلام او را خوب یا خراب میگه او مسئله نیت انسان کسی یک لباس رو می‌پوشن میگه من لباس بسیار خوبش می‌پوشن خوب لباس لوکس میپوشم. چیه است که آثار نعمت در وجودش دیده شد و سر کسی تکبر نکنه اما یک کسی دیگه است که لباس می‌پوشن و خاطر از این باز مردم لباس های برسایش کنن مردم باز مرد بسیاری و مود و فشار برابر است مردم بسیار مردم های دیگه کسی کم بیاین و ما کم نبیم و در خود غرور یعنی خود غرور لباس خراب می اما اگر یک نفر لباس خوبا می بوشن وانی مغرور نیست دیگر در این قسمت باز پروانه دارد خاطر چی که مثلا ما حدیث داریم که حضرت عبدالله بن عمر عبدالله تعالی اما در قبلی هم برطال گفتم که رسول گنامی صلاح و صلی اللہ علیہ گفت که من لبس از صوب شهرتن فی الدنیا البسه الله صوب و مذلتن یوم القیامه دیگر گفت که اگر کسی لباس شهرت در دنیا می الله تعالی بارش لباس زلطه بخاطر چی تاکید تأکید است شاید حدیث امام احمد در حدیث 5631 و ابو داود در دا 4029 و ایره امام البانی در حدیث خود گفت که حسن است 3399 و ابن ماجه هم در ۳۰۰۰۰۰۰ این روایت کردن خب اینجا سوال میشه چرا اسلام زیادتر سر از این پیغمه که اگه کس لباس شغرات بپوشن لباس زلت خداوند در آخرت نصیبش میکنن و از این است که بسیاری مردم ها غرور خدا تکبر خدا در لباس نشان میده خصوصا خانم ها و کسایی که عادت های خانم ها را زیادتر دارن. زیادتر سنی لباس خود متوجه هستن و در مجالس و محافل زیادتر کوشش میکنن که از دیگر لباسش بهتر باشه، کلهگی سوجان سر کنن و همیشه وقت خوده این مسائل مصرف میکنن. بیچاره بچهای جوان میبینید. بیچاره جوانا رو میبینیم که اگه 20 تا 20 پاین بدهن سد اسلامی باشه کمرش مش کنه. باز میگه او ولی کی ما تصمیم نمیخوامش تو بخرم. باز کی بری تو هزار پر یک دامن پلوون میخرم. یاد جت هنگ ققش مثلا دوازا صدر کردن چرا به خاطر ازی که لباس وقتی که انسان می پوشه به خاطر ازی که زیبایی و زینتش باشه لباس خوب باشه پاک باشه اما اگر همین لباس برعکس سی این لباس سراب ازی میشه که انسان مغرور بشه از این خاطر میگه لباس شهرت چون کسایی کسایی که زیاد مدپرستی و زیاد در لباس تاکید میکنن یا لباس شهرت به خاطر چی می پوشن به خاطر ازی که سراتب خدا بسازن چرا خدا بسازه اما اگر انسان می لباس ساده و خوب و پاک و نظیف و انتا زیبا بکشن اما در نیتش ایودی نباشن لباس شورت علمان بگن که تنها لباس لباس لباسهای نو و مود یا نیستن بلکه احیانا لباسهای چی؟ هایی که بعض کسا را محروض میسازن های بسیار جنده و کونه و ملنگی و این اون لباس هم این نفر در دلشیه است؟ تا وجوی مردنما یعنی لباس شهرت چی میگن میگه که لباس عادی هست که کل لگی میپوشه وقتی که مثلا کوله ما لباس پوشیدیم سر کلگی سرکنه میگه خلاص یام بلان تنبوند داره وام داره وام داره وام لباس من هم داره کلگی داره اما لباس, لباس شهرت چی هست که وقتی که کوله سر میکنه او نه والا فلانی چی پی، چی لباس لکسی جور کرده احیان این لباس بسیار قیمتی میباشن احیان یک نفر خاطر که خدا مشهور بسازه و در بین دیگه ریا و تکبر خدا نشانبتر باز بسیار لباس های کنه و خراب و گنده می کن از این خاطر او را هم علمه میگن در لباس چی داخل میجن؟ در دا لباس شورت که ای هم نارواه هست که کسی یک لباس های کنشن خاطر خدا مشهور بسازه در بین مردم که والا بسیار فکیر است و بسیار بیکاره هست و بسیار نان نمیخوره و بسیار ترک دنیا کرده و بسیار امی خودش هم توسط لباس رو به مشهور بسازه در بین مردم این هم میگه ناروا و نجایز است بخاطر دیگه از اینجا از, از عادت نورمال خودم بیرون کشیده خب دیگه در جمله مسئله که در لباس انسان داخل است خب آن چیز لباس است و آن چیزی که انسان می پوشه یا مثلا از ها یا شنو است تلا هست تلا هم از جمله اسکیلام در باب لباس علما ذکر میکنند که حرمت تلا و ابریشم است بالای مردها البته اونجا استثناء که خدا داره که باز ما شما در قسمت استثناتش صحبت میکنیم که مثلا یک نفر مریض است یا تکلیف داره دیگه از این خاطر خود لباء خود تلا و ابریشم بالای مردها به شکل عمومی حرام است لکن به اساس عذر یا ضرورت یا تکلیف یا مریضی یک چیز باشه اینو میگه علما درباره از بحث کردن خب حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی علیه این میگه میگه قال ان نبی الله صلی الله علیه و سلم اخذ حریرا فجعله في يمینی میگه یک روز پیغمبر صلی الله علیه و اسلام کرد گرفت ابریشم در سر او قسم می برد و اخذ ذهبن با دو تلا گرفت و جعلهو فی شمالی در دست چپ خود تلا را دست راست عبریشان دست چپ خود هم تلا را گرفت سو مقال اِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَىٰ ظُخُورِ اُمَّتِ پیغمبر صامی گفت که اینی دو چیز یعنی عبریشان و تلا ای حرام از بالای های امت من به نعن برای مردهای امت پیغمبر صلی الله علیه وسلم پوشیدن طلا و عبرشم حرام است این حدیث شریف عبود داود در چار و, و نمبر چار و است در کتاب عبود داود و صحح والالبانی و امام البانی اینه گفته که این حدیث صحیح است در سی و چار و بیست دو و هم در پنج و, و, و ابن ماجد در سی 95 حدیث اینا بس 3595 روایت کردن شما شما سفر میمون یروسات حالا چی که برای ما ایدن برای حدیث میخانی و این البانی صحیح گفته یا گفتن فرادرای عزیز بزرگترین مشکلی که فعلا در کشور ما و شما هست بزرگترین مشکلی که در بین مسلمان‌ها هست این است که مسلمان‌ها به سری وقت‌ها بیش از کسا گپ می‌زنن آیتم میگه نمی‌فهمه که یادت است یا نیست از دل خود واسه پسون فرسان میکنن میگه استاد یک آیه شریفه پس من کدام آیه شریفه است یک حدیث میخوام حدیث مگه آیاه که آخیا اینا چیزی رو مگه حدیث است و اون حدیث نیست حدیث نیست ما کلشون گفته که اینی اینی گب دروغی است یک یک مثلا یک مقبول از عمر گفته یا ابا کسید گفته یا امام سمی اعظم ابو حنیفه رحمته الله علیه گفته یا امام شافعی گفته اینکه صاحب هر چیزی که پیدا کنه به هر نسبت بده به رسول الله صلی الله علیه و سلم مگه به یک حدیث شریف است اینا علی از این عزی خاطر برادر عزیز همیشه دین وقتی میتونه ما دین خودو حفظ بکنیم که قرآن رو بفهمیم که در کدام آیت قرآن است مستند و حدیث باید بفهمیم که این حدیث صحیح است یا حدیث ضعیف است یا حسن است یا این قبول کردن علما یا قبول نکردن رد کردن در غیر از اون اگر هر هر روایتی که در دس آمد وقصه قصاص بسیاری وقتا قصای عجیب و غریب است متاسفانه بسیاری از علمای ما سر منبر میگن در وقتی که تو سرمون منبر بالا میشی یا تو میای دعوت میکنی یکی از شرایط دعوت اسلامی است که درست است ما نام دعوت وظیفه هر انسان مسلمان است لکن وقتی که دعوت میکنی باید بفهمی که حدیث حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلام است و حدیث صحیح هست آنه بسیاری احادیث صحیح هست و او استناد می کنند و او در قلب مردم جای گرفته گرفته گرفته گرفته بلاخره در حال که او حدیث هیچ نیستد و او را رما مطلقا گفتن که حدیث نیست این قلب موضوع ساخته است. که باز ما یک درس را در باره احادیث موضوع هست برطان میگم و میبینیم که در افغانستان میبین چقدر احادیث از قاتل هر حدیثی را که ما استنباط میکنیم یا سرازو بحث میکنیم یا دست میکنیم مجبور هستیم که او حدیث سرش تحقیق بکنیم که اینمی حدیث بله ثابت هست و خاطر از گردن ما بسته میشه وظیفه ما مثلا یک عالم حق ندارم یک عالم یا یک داعی من عالم نیستم دعوت میکنم اینال وقتی که من داعی هستم پس بالای ما واجب است لازم است که من وقتی که آیته میگم باید بفهمید آیت از طریق تلفظ زیاد است باید بفهمم که چخصم تلفظ می و بفهمم که علما در باره از این علمای فقه در باره چی گفتن هر کس ار آیت آیته هر حدیثی حدیث حدیثی پیدا کرد و او هم و یا حدیث وقتی که گپ میزنه باید مستند کنه بزنه که این حدیث هست نیست تا از اون دادن وابسته میشه و دروغ از بالا پیدا بر رو پنامهسم من کس علی به عل یه متعممدن و کسی معدهمون دروغ نار کس که سرما دروغ میگن کدنگه جایگاه م دو باباره توی یههی سر روت میگیرین قدان رو باید کردیم و از صنحش خدا آگاه نه ساختی در یکس یهکس او بر از زو فوبال از وب و فو زو تا یکی بگرن گفته مین بالاخره دو این مردم شدت پیداه که ا بالاا پیم سلام گفته که ابو حنی سراج رااج در حالی که ملاح علی یک کتاب داره در باری موضوعات گفته که ای حدیث نیست این متعصیبین احناف و دروح نیستان <تصفيق> به پیغمبر نسبت کردن بخاطر از که امام خود امام عظم بسیار ردبه بدن نفتهم پیغمبرت رو بفتر اوامی میخستم احادیث بسیار زیادی هست که پیغمبر نمیفتر و این بسیاری کسا رو ببینی که حالم است از او شنیده و از او شنیده و از او ش سرازوی بحث بکنیم به نه وقت وقتی ما میویم که اینی حالیس قرآن هم گفتم میگه که دخلانی کتاب است در سهی بخاری هست یا در صحیح مسلم است یا در سنن ابو است یا مثلا در ابن ماجه هست یا نسایی هست یا مثلا موقع مالک است و بعضی میگن که همین احادیث که این علما در هم تحقیق کردن چون مشکات المسابيح الهو مشکات المسابيح در مدارس میخوریم نورمال لكن سر حدیث ما تحقیق نمیکنن و یکی از در درباره احادیثش تحقیق کرده بسیار احادیث ضعیف است در بین مشکات المسابيح وایضا نما ما ایران حتی اقل یک عالم میگه میگه اگر مسلمان ها در وقت تمدن اسلامی به از علم حدیث دیگه هیچ چیزا نمی امی افتخار علم حدیث برای وجه کفایت میکرد چرا که علما در شناختن حدیث پیغمبر در احادیث صحیح در فهم از احادیث در احادیث دروغی را که مثلا بعضی مذاهب و بعضی از گمراه ها دروغ نسبت داد به پیغمبر اساساً یه خوب غالب کردند شخصیت ها را مطالعه کردند با نام علم رجال هر شخص در باریش کتابها نوشته کردن کردند درباره اشخاص نوشته کردند سند مطالع کردند بران کل زیر با دقت سرش بحث و تحقیل کردن این ای علم بگه در پیش هیچ امت نیست که به این اندازه مسادر از یا موسق است پس ما اوتو ببینید این وقت آفد این علمان امام بخاری رحمت الالهی اگر وقت پیدا کنید سر زندگی از او بحث انسان بکنه که امام بخاری چه قسم احادیث جمع کرد میبینید که امام بخاری سب از و اشار سابق اولایت ها بود اول مملکت هاست مثلا مثلا از مدینه منوره می مثلا در از عراق میرد. در جای دیگه بخاطر چی از بخارا می مدینه از مدینه منوره در کوفه در عراق در اونجا در اونجا در فلسطید در فلسطید پشت یک حدیث ماها سفر می کرد و او حدیث جمع کرده و اونجا بر ما او تو مانده حدیث ما او تو ا صنعت پیغمبر بس متدبیقه حداقل وصولا نداریم که امی حدیث ها از صحیح بخاری مطالعه بکن و که بله این حدیث این مساله را که من میگم این حدیث رت میزنم این ده صحیح بخاری است یا صحیح مسلم است یا این حدیث هست این حدیث نیست اینی صحیح است اینی غلط است ادعای خود باید ای خو تخویه زیره میکنه معمولاً یک کس اول در جای یک جایی آگه ما بخشیم دیگر از دان ازش میگه دیگر میخواد از دان خو از ازش میگه و بالاخره دنبال بین عوام الناس شورت پیدا میکنه و مردم کلاگی میگه ولی اینی میگن باز کل عوام میگن میگه وقتی که یک نفر پیدا شد و ازش میگه حدیث نیست باز کل مردم ازش ازش انتقاد میکنند این کلاگی میگه سعی است جدا برابر حالا کلگی خود اضامت نمیدن یعنی درس دادن، دعوت کردن، مردم برای دین فاهماندن این خود حدیقل الان باید منعیس مسئولیت وقتی که سند نفر در مقابل انسان استاد میشن حدیقل باید درس درست خود یک که قبلان آمادگی بگیرن ورقا را پیش روی خود بانه ما میدارم اصلا عقصه ای که آمد بیاد قصه از شعب بکو و از غرب بکو و از فلانی بکن و بر مردم گفته بود اینمی عدم توجه به خورآن و عدم توجه به احادیث پیغمبران سبب گبرایی بسیاری کثا شدن یک نفر خوب میگه من مسلمان هستم اما گفای از دانش میگه که گفای کفرآمیز میگه من موحد هستم کار میگه که وره به شرک نزدیک میگه من موحد هستم ما مسلمان هستیم کلمه هم میخوان باز میره در مقابل از اینکه میگه من دستایترم مواظب کنم بعد سجده‌بکنم کم میزه مرا بشازید آ آ من حق دارم سعیدی عالم است سعید فامید است سعیدی بسیار شخصیت خوبه لکن والله خداوند متعال ولات جواب کن فسقم چه تو که ایش جنتی هست خداوند میگه تذکیه نگیر یکی دیگه تان تذکیه اشاری مستقیم به جنت که اصلا اونها صحابه میگفتن که اینا جنتی هستن یک صحابی دیگه صحابی رو نمیگه جنتی است با غیر از محشری مستقیم که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته بود که جنتی هستند حتی تا خود حال میکردن و بسیاری احادیث سؤل که یک وقتی یک صحابی فهمت گفتن ان شاء الله این جنتیه پیغمبر مسئله نگوی جنتیه میشه دولت گفت گپ زده باشه که با او ارتباط نداشته دیگه به بیوده گپ زده باشه نگوی که جنتیه وقتی قران می والا تزکو انفسکم حتی یک نفر یک صحابی یک صحابی دیگه را پیشروش که پیغمبر سمبرجو که که چرا پیشش به سری وقتا ما مخالف قرآن و مخالف سنت از خاطر بین که بعد شناخت قرآن و شناخت احادیث با قومیدن احادیس صحیح پیامبر صلی الله علیه و سلام و با شناخت قرآن وقت بدیم وقت بدیم حلقات درسی داشته باشیم از اینا استفاده بکنیم درست بفاید. که ما درست بفهمیم اما اینکه هر کس به خیال سبب بگه که من عالم هستم و برای من علم اومده و به و کتاب هم ندارم هر که من بگم علمی علم است این غلط است و انسان بسیاری وقتها با گمراهی و همه کشته. خب اصل بحث ما سر بود که پوشیدن دلا و پوشیدن عبرشون بالای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام است. به منظور از پوشیدنش چی است؟ منظور از پوشیدن تا این است که مثلا این نفر باید موالا تلا را نمی پوشم. خب در که تلا را نمی پوشم. نه تو که جوان هستی وقتی که ازدواج میکنی این انگشتر تلا را کل کردن این رواج های غیر مسلمان ها هست پس تو چه تو بخواهی که پیغمبر خدا را خفا بسازی خ باشمه و شما تلارام یسه یک واخت من امزاد میشدمه که من گفتم دو دونه چلا چلا بگی م.. یکی بر خود یکی بر خانان مرتو خیر است نگویید که من گوشنه استم نمی دانم خریده دو دونه چلا می خرم هم یار دوش از خانمم باشه ارزش ازو باشه من این پشم چرا به خاطر کسی حرام است اینو که من پیسہ ندارم پیسہ دارم امکانش دارم خیر است من دو چلا می خرم مطابق چیز شما خودم نه پشم که پیغمبر ما اینا من چیز کردم میگم والا سیت دیگران هم می پوشم وقت انتظار نمی پوشم تو گره واسوی من نیست و خداوند باي اقلاواني بوتار گفتم و علكم في رسول الله و حسنه. رسول الله خدا کنه که بسیار آدمای کلام کلان, کلان و بزرگوار این مشترای تلاش خود کرده باشه من من که حدیث خانم من میگم که نه بدان پوشیدن لباس ابریشمی تنها لباسش نیست منظور که مثلا قله پوشیدنش باشه شیش در بالای طلا مثلا اینا چوب طلا بیشینه این هم می سازه هم نارواه و حرام هست مثلا یک نفر ظرف طلایی داره در کاسی غذا می یه هم هم نارواه هست مثلا عبرشون توشک عبرشون می ساختن یه هم درست نیست به نه هم پوشیدن از و ساختن از کل از خب اما بر مردها نه بر خانم ها. بر مردها متاجی باشون که بسیاری وقتا زن و مرد به گت بر زنها هم تلا پوشیدن حلال هست و هم نبرشن. خب. دیگه ابی اماما رجل الله تعالی چی میگه میگه قال این رسول الله صلی الله علیه و سلم من لبس الحريره فی دنیا لم يلبس فی الاخره کسی که ابریشم در دنیا رو در روز آخرت ابریشم پوشیده نمیتونه خب شاید و والله اعلم لباس که جنتی ها دارن در جمله لباس های مختلفی که دارن یکی از لباس هاش ابریشم است برای جنتی ها و او ابریشم است که مخصوص جنت است کسی که در دنیا مردیان منظورش مرد است ازی مرد خاطری مردی که در دنیا ابریشم می روز آخرت ابریشون پوشیدن نمیتونن این حدیث نمبر 2774 است که امام مسلم در صحیح مسلم میر رو روایت کردنه و همچنین حضرت ابو هراره راداته میگه که از نمیسن انه نهى عن ان خاتم الذهب بنابراین پس سلام میگه نحی کرد از انگشتر طلا یعنی بنابراین گفته که شما امت مسلمان ان اطلاع باید نپوشی چلهت اطلاع باید نپوشی تو مرد مسلمان از لا کدت لا باید نپوشی ای عرزل کرسی اسم و اسماعلاوی رو به بجور میکنن تو مرد جوان مسلمان رو باید نپوشی به خاطر ازی که تو از امت پیغمبر صلی الله علیه و سلام هستی خب لکن استثناء چیست؟ چی است استثنای است مثلا مردها میتونن که ابریشو بکوشن وقتی که کدام مشکلی داشته باشن مثلا حضرت انس رضی الله میگه نبی کریم الله و سلم رخص الاعاده رحمان الرحمن ابن عوف والزبير میگه حضرت عبد الرحمن ابن عوف, عوف و حضرت زبیر رضی الله تعالی عنهما ده برشان رخصت داده چی؟ فی قمیص من حرير من حكه كانت بهما میگه یک یک قسم تکلیف جلدی داشتن تخریش وجودشان داشت تکلیف جلدی بود برایان پیغمبر سان به خاطر ضرورت برشان اجازه داد که زیر پیرانی یا پیراهن خود، می عبریشو میبسازن خاطر از این که او بر تخریش البت داپترهای طب گفته بودن که این تخریش کم میکنن از این خاطر براز ما گفت اجازه داده بود به نه هم این لما چی میگن؟ اینه میگن که این بخاطر هسته بخاطر ضرورت است ضرورت است ای حدیث شریف امام بخاری در 2019 و امام مسلم در 2017 و احمد در 11 و همین قسم ترمیزی و نسایی و ابو و ابن ماجن کلشان ایراد را روایت کردند. همین قسم پوشیدن علی در جنگ مثلا در جنگ وقتی که یک کس می پوشند برای هم در حالت جنگ و دفع ضرورت مثل یک نفر هیچ لباس نمی باشد عبرتش فرض از بای سطر بگنند دیگه هیچ لباس نیست در اینجایی هست دیگه لباس نیست لباس عبریشیمی هست بنامان بخاطر ضرورت در حالت جنگ، بخاطر مریضی، بخاطر ای که مثلا لباس ندار عبرتش معلوم میشه موقتا میپوشه در این حالت ها برشان اجازه دار یا مثلا یک جایی هست ایچ لباس نیست اینالی جمپر عبریشیمی را اگر ای بو پوشن چیست بسیار خنک است. و علما ها میگن همچنان اگر مقدار کم باشه به با اندازه چار انگشت مثلا چهار انگشت یا کمتر از اون مثلا بعضی ژاپنی‌ها هست مثلا چهار رنگ بندی چهار رنگوش ابریشم داشت کار شده ایراد مجازه دادن و خاطر اینکه میگه که عمر ابن خطاب رضی الله که میگه نه نبی الله صلی الله علیه و سلام عن لبس الحریر الا مودع اسبعین او ثلاث او اربعه میگه از پوشیدن ابریشم مکن مگر با دو انگشت، یا سی انگشت یا چهار انگشت. یه حدیث است که روایت البخاری، امام بخاری در حدیث پنجهزار و آشده بیست و مسلم در دوهزار و شش روایت کرده و همین پسیم ماخذ و نصایب و ابن ماجه هم یه حدیث روایت کردن. بناآن از این حدیث شریف علمایت استفاد میکنن که پوشیدن ابریشم در پوشیدن یه لباس که باندازه دکل یا سیکل یا چارکل میمونه. دو انگش، دو انگش ابرشون کاشته باشند یا سی انگش ابرشون کاشته باشی یا چارانش اضافیش. اما مطلقا عبریشم خالص اون رواه هستن، اما بندانه دو انگشت سی انگوش، چور انگوش علما میگن که گیره اجازه دادن در قسمت لباس پوشاندن عبریشم در قسمت علما گفتن که بعضی ها گفتن که بر اطفال که سخیر هستن عبریشم بپشند بچه های خورد دیگر. اما بعضی همی... بعضی‌ها گفتن که جایست و بعضی علماء که نه، از اینکه برشان گفتن که وقتی که هفت شد نماز شروع بکنه در سالش شد سلاششه از این خاطر عبره شما هم اطفال باید ایتیارت انسان کنه و بر بچه ها نبوشنه اما بعد دختر از اینکه ها کدام پروانه دارن دیگه ایست که در مسائل لباس که مردها ها سنت است که لباسشان کوتا باشه مردها لباسشان سنت است که کوتاه باشه و سنت است که لباسشان طویل باشه یعنی خانمها تا که هر خانم دیندار از گوشت بگیره که لباسایش چی باشه طويل باشه و مردهایی که متداول است کوشش میکنن مثلا تنبارایشان پادشاهشان کوتاتر باشه از بجلاد بالاتر باشن از این خاطر ولی متاسفانه امروز برعکس شده یک وقت ما در رفیم رئیسی پولیسی دوبایی مرخواست سلام علیکم خوب است این سرطان خوب است شما نماز خواندن یاد دارین مردم. مردم حالا خوب است تو کم کم, کم،, کم یک وقت می کنیم گفت که سر مسائل اسلامی بحث میکرد باز من گفت شما خوب مسلمان هستید در دوبایی که بیریم اینجا مردای جیگه خوب شاید اسمالک هم در سر داره چندارک هم داره پیرانش هم تا شست پایی از فیلیپین مردا است. کارگراششان بود داخل میدان کس از فیلیپین و از کشور جوبشرر پاسی هستن کل شنابین مینی جووب است لباس از وقت شما بسیار خوب اصلاحتون تبیق کرد نام خودم که مردیتان زن شدین لباس زننا رو میین زناتزمایم خیر طبیعق بود تو چه تارق تکت بیننا که دراز تاسته با رو بدی از زن از زنان آات پشت مینی جووبون پروانه میکنه و تو ما تو از زانوییت پایینتر باشیم ارا رو بیسری وقتا می بینین بیچری کس ها رو خواص که خوب حرس ببینید این سری معفرت رو مرد خوب حتی یخن آخریشان بسته کرده نیست ایده بسته کردن اکتایی میدن و میکنن و کرتی شون منظم است لباسشان لباس جور است با زن ها را که ببینیوره لباسش کوتاه در حالی که سنت برای مسلمانایی است که از مرد لباسشان کوتاه باشد و از زنها لباسشان باید چی باشه تبیل باشه از این خاطر در احادیث تا آمده که کسی که به بعض روایت ها هست ما اصفل من الکعبین من الازار ففلنار کس که ازار می پوشن و از بجلک پایانش ازارش باقی مانده شده در حدیث گفته که در آتش توزه هست و امام احمد میگن گن ازار مؤمن من انصاف ساخن فا اصفل منزاله که لما فوق الکعبین فا اکان اصفل منزاله که ففلنار گیره امام احمد روایت کردن و امام بخاری هم یه حدیث شریف روایت کردن خب موضوع دیگه که در قسمت لباس بسیار با از کوره مسلمان ها باید متوجه باشه بسیاری آ دشمن های اسلام کوشش میکنن که جوان هایمرکمره هم بساند چه قسم گ ها یکی از آثار گمره های شنی است که لباس های تصویردار از زیاد بربر میز. اکثرا جوان رو می بینی که اتبیسری آدم که در بازار میری اکثریرانی کار داشته باشه خدا چرا چیزی چیز چیزی یاد نمیشن به تصویر به عکس ازی خاطر حرام از دیدن لباس هایی که بالای لباس عکس های صلیب باشن و یا تصاویر باشن اصلا صلیب علامت یک مسیحی صلیبی صلیبی است که میگه عیسی علی سلام به چی خدا سلام بدن او علامت علامتی از اون هست. پس چ یک جوان مسلمان ما میگزه لباسی که صلیب از بیشتری کیر بی در قدر و صلی ویزان میکنن سری خانواچ مننگل سترار رو درگردناخ ویزار میکنن. سری کساس کری اونوار رو استفاده میکنن. این این تشببهات عقیدتی هست و در اینجا بسیار خطرناک است با سرش بحث میکنیم. به نه هم پوشیدن یر اسسا نارووا هست. به بیاعش اطاتان ها میگه انانداش چرات نمقطتا فیها تا سایرر کدام چیزی را میگه خررییده آن تصاویر او تتصاویر بود میگنبیسان وقتی کرد. من را که نمراخ خ منظورش کدام پرده بوده باشه یا کدام چیزی دیوار آویزان می‌شه وقت میکردن میگه این وقت کرده بود کدام پرده یا کدام چیزی دیوار دیوار میکردن می‌کردن ای این تصاویری بود میگه پیغمبر صلی الله وقت که داخل شد سعی کنن ببینید بسیاری وقت‌ها ما وقتی که یگان جای یگان موضوع رو برای بعضی دوستا میگیم خوب دیندار است خوب دیندار است خوب شیطانی رو به شکل ازش اشکال وسوسه شیطانی را گمراه میسازه شیطان سر میگه کدام پیچت لاقحد است هم خوب تا میده تا که تر ام موتره یک پیچش که لاقحد شد او متوجه نمیشه متأسف است میری میری میری پیچ خطا میخره او پیچ که خطا کرد دیگر پیچ خطا میخره بالاخره یک واقعه سال که تایر موتر رابطه و موتره تا کار کرد و جپش خراب است از خود دیواره ویشار وقتی که دید که لاقحد است از ماوار ام هم پچ چی می خوب ما تو محاکم تای تو شمیره نامه که نامنگاه یگی گماشید. اول بیر ندر بیر سری مسایل ایماری هم میتر میتر میتر میتر. ای که شیطان میبینن کدان پیچا ک کما ک لاقس. و ران او زام و میته میته، بالاخره خطا خورد، دیگه پیچیدگی، دیگه پیچیدگی، دیگه پیچیدگی. یک وقت سر گهری ک قلب تکر کردم و موتر ایمان به طرف به سری کسا هست که میبینی خوب هم از عکس برادر از, امی، از از از امی فرهنگ عکس پرستی بود ریسن بسیاری وقتا اینمی عکس ها که عکس های دخترای مسلمان به دست بچهای نامحرم رفته چرا؟ به خاطر خودی ازی عکس برداری کرده وردا در کامپیوتر خود مانده یک نفر فلش خود انداخته کل تصاویر از کامپیوتر گرفته دیگه از اینکه عکس های خانم ها ازی و اعضای فامیلش بر جای ننشست خصوص از خانم حتی از خودتان برخو تو هم نقص میکنی اما که خوب استی جوان هستی محبوب هستی داسالباد کپ و کپ میشی باز تو خودت سگ او اوه برداشت خوب معبودم نه دگر خودت چی میگین از کی تا پشت کنید که همین تصویر در لباس ها بسیاری که بختا هم جهان که در نماز می پیشروی ما استاد میشه در تخته باشه تصویر است از خاطر سعی داشت اینکه هیچ چیزی که اخلاص در دین چی میگن کمی جدیه ریک که رسول الله صلی الله علیه و اینی چیزا خوب گفتن و اینی چیزا خراب گفتن فوراً خوبه بگی و خراب ترکو ولو که اگر نفر بگه برو پروانه داره و برو خیره و برو چطور انگه اگر ضرورت بود ضرورت بود مثلا احتیاج داشتی پاسپورت ضرورت داشتی تذکره ضرورت داشتی کارت ضرورت داشتی این هم اسلام ضرورت ها را مطابق ضرورت هر چیزه علما گفتن که اسلام اجازه میدن بخاطر اینکه سختی نمیشه اما در صورت که شوقگی هست چیزی که یک نفر تصاویر خانم های خدا گرفته و تصاویر بگیرن و یا خود بگیره از این خاطر سعی کنیم که حضرت ام المؤمنین عایشه را دلالا آنها چی میگن میگه که انذا متحدث له بصادقه فيها الصوره من زواتنا اه خب الهی میگه اشتراط نمره نمره چی میگه نمره یک قسم بالشتو بود شما تکیه میگیم میگه تو تا پسر میموندن که سلازو تکیه میکردن میگه استانات نمرقتن فيها تساوی فقام النبي صلی الله علیه و سلم بالباب پیغمبر سام در داخلش بیبیاجش پس حالا از کنی مثلا پوشای بالو شمارش لطف دوستیور که رسول صلی الله علیه وسلم فلم فلام داخل اتاق طاق نشود کمیست داخل نشد فقل تو عطوه الله میم ما عذنت تو بیبیاجش را دلطلانها نمیفهمه میگه و در دروازه داخل بیبی عایشه فورا نسات میشه و میاد وش میگه عطوبه ایلله سه کم سه یک زن مؤمنه قوای ایمان بیبی عایشه رضیالله تعلق هر مجاز کشواره نمیبینه که پیشونش یک همکن چریش تحریر کرده بوده دروازه استاد است. اول بسیاری وقت در خانه داره که خانه قرار پشت تلویزیون شیشته و شوارش پیشونش توش شم میشه اسمو خلا میشه قرار اون سازی که داره تک تک تک تو خانه کرده میشه اینجا کسی نمیشه. و میگم ما دیندار هستن. یا بسیاری وقتا چادر گاش میپشن خوب برش شمارش سهل میکنه سورشو شارم میکنن و سوپوی میکن سو چادر از خدا بترس که از مردان محرم هستی باز میبیند تهیر خدا میرم چطور است؟ چی نانست بسیاری زن هست. از خدا نمیترسن با خدا و در روز قیامت جواب میدن. از چی خود میترسن بیشتر خود خوب چادر شوش شوش رو در دل میپوشه بود از کله کته که همین شیش چشمه شوی طرف شد به طور دیگه کلی خنه حزرتش ای سبب اول شاور نه تو وقتی که هجاب میکنی و لباس ساتل از خدا الله حق ان من، الله حقش بیشدار که انسان از او حیا بکنه از این خاطر ایناله سعی کن ببین عاشر دلتان یک زن مسلمان است با ایمان است عقیده داره ورسول اگر می اسلام سوسما خفه نمیسازه میخواست اتاقش زیباتر بشه خوب تر جلوه بکنه تکی رو گرفت تک تا که فجت بارش شده از از از, از تکی تصویر دار گرفت بعد امام رسول سلام اومد دروازه ها تقام نبی صلی الله علیه و آله بالباب فلم يدخل داخل نشد ببیاشه و تاجه که چطور دروازه ایستاد چطور داخل اتاق نمیشه فورا گفتم فقلت سایه خودش میگه فقلت اتوب الی الله مما انغبطت این ما از نکتو گفت من توبه میکنم به الله از چیزی که کردی ای رسول خواستم چرا متاثر شدی؟ من توبه کردم به الله اگر کدام اشتباهی کرده باشم فقام النبی قاله ما ها زهین نمرو قع طیقه برس هم گفتی قالت لی تجلیسه علیه ها و توسل هم گفت ای پر عزیز کتو برس هم بشینی بالش و ای سرشتت یک کدی خوب همون تو کشانید هست تحت و توسیده هایت و ساده و ساده همی تکیه اگر بالشده میگه قال این اصحاب ها ذه سوات یعذبون یوم صاحبای از این تصاویر در روز قیامت عذاب داده میشه یعنی کسی که این تصویرها را کشیدن به تصویر تصویر را اتکازدن یا چی میشن؟ یا در روز قیامت عذاب میشن از این خاطر هایی که و زیرپرهای تصویر دار جرم می کردن ان شاء در روز قیامت عذاب میشن خداوند راهنمایی بکنن تجارهایی که اتکاهای تصویر دارا فرمایش میدن در روز قیامت عذاب میشن از این خاطر کسایی که تجار است دکاندار است لباس وارد میکنه از این خاطر یک انسان مسلمان تو که تجار مسلمان هستی حق نداری لباس پنجابی وارد بکنی چون تو و تعاون على البر و التقوى. الله جل جلو برموش ما چی میگن؟ تعاون کنین بر بر و تقوه ما چند دفعه میخواستم میره. درس بگنم لکن متاسفانه فراموش میکنم که تعاون بر بر بر, بر, بر نیکی میشه و تقوا میشه ولا تعاونوا تعاون و الاسم و و گناه و تجاوز به تعاون نکنین پس تجاره که پیرانهای گلدار تصویردار وارد میکنن دیران های خارجی ها پیران های بی دین ها را که مرغیده دواج میدادن بین مردان یا کلشان دغونا داخل هستن از خود پیغمبرستم چیکو ان اصحاب هذه السور عذبون یوم القیامه کسانی که این جور کردن یا در روز قیامت عذاب میشن چرا یقالو لهم بر از اینا گفته که او یوم خلقتم چیزی که شما خلق کردید جور کردید پس یارو نفس بده زنده کنینشانا چرا؟ سیکل چرا؟ به خاطر اجی انسان نباید اصفات خدا خدایی بسازه یکی از صفات خدا چی است مصور است مصور تصویر کننده امی چیلی ما و شما را کلشان کی تصویر کرده الله الله جل جلاله جل پس تو حق نداره که مصور شوه اگر کس خدا مشابهی با خدا بشه اینجا اجداد در خزر خدا گرفتار میشه از این خاطر انسان باید حد خدا بشناسه الله متکبر است کبریا از الله جل جلاله جل. خالق است. اینالا اگر انسان صفتش چی؟ تواضع است. اگر انسان تکبر کنه در غضب خدا گرفتار میشه. از این خاطر ما نباید در صفاتی که مربوط شان الله جل جلاله است، دخالت بکنیم. و کسایی که تصویر میسازن و مجسمه جور میکنن و اک اکاسی عکاسی می میکنن و این تصویرها رو میسازن و عکاسی میکنن خود می اگه فیگور ببینی اگه فقط عکس میگیری برش عکس میگیری، نشتا خوب و سنت ماندی. قربون برای تبیه، به یادار اول وقتی که بودید بود که اگر خود میگیرید تزویر، منافیتون بیان فرمودشتور. اینا رو بی چیز دیگه از خاطر میگن ای رب عزوج فن اصحاب حاضر الصور یعذبون يوم القيامه يقال له ما خلقتم شبهه خداکد خدوان مشابه کردید مصاویر الله بود تو خدا تصویر تصیف و تصویر سازنده تو خدا جور کردید. پس اینا رو چه و ان الملائکه باز دست متبر بیا اشاره درس دیگه ما داخل و ان الملائکه الا تدخل بیتی فیه الصوره در خانه‌ای که در دیوالش تصویر زندار آویزان باشه به جان مناظر های زیبا زیبا انسان داشته باشه از درختها و از نباتات و از کوها و از دریاها برای زیبایی منزل پروا ندارن اما در خانه که تصاویر انسان های باشه باشه هیچ ملائکه داخل نمی‌شه اینا اونت نامه منی ملائکه رحمت داشتیم ملائکه غضب خدا هر جای داخل میشه ملائکه غضب من دوازده خوک داشته بود. اونجا شداد و غلاظ الله یعصون الله ما امره اما ملائکه رحمت در خانه هایی که تصاویر است در اونجا داخل نمیشه از این خاطر یگان کسایی که مثل انصجان و عکس های جان سینا و پچیزکارا خوش دارن بازور مردگان دیو لکات المریمه که عکس یک تیکر در تیکرو سر در ماریچ اسباده بچی انز جان حالتو خنمادی ده در در اینال گفت داره چیست؟ است که در این خانه که یک عکس باشه در اینجا خود دا رحمت داخل نمیشه آن تو خوش دارید یک پاره و سو که تصویر هره قرآن خانه چقدر زیوه که انسان در خانه خود یک کتاب خانه داشته باشه خانه خود زیوه بسازه با قرآن هزموشه میمان که من در بخیر خانه ها بری یک و نیم ساعت تلاشی نمیکنه. حالیه مزایاین و قرآن دست است چندتا حدیث شریف اونجا با چندتا کتابای دینی ده میمان کامات که بیکار بود بگه ای این کتاب ها است اینی هست در خانه میگه که انسان رو بوش است در یک کتاب است آدمی که پنج دخه بیکار مان میتوشه کتابش تکمیل این کتابو شود تو باشی یک دخه تاکوچوایی برمیگه کتابو بخون انسان بعد نخ ش میگه نه اول دخانی جا میادی خاندان رو بردم میمانی حالا مخ پرسان تو هم از پرسان از گلستان من خانم هم یک میگیم اگر باید کنیم اگر پرسان تو آمدیم اگر پرسان گلزمان نمیدم گلزمان آنه در دا... بازار در جای پیدا میشه دیگه از این خاطر سعی کنیم و این الملائکة لا تدخلو بیتن فیخه السورم این پیغه مرسل ملائکه داخل نمیشه در او خانه که در او تصویر است خواهد تصویری پدر کلارت باشه خواهد تصویری کلام شیخ باشه خ عطدادس میشه عمل علم پشرف بکنن بتونن تا تصویر پیغمبر صلی الله علیه و آله از فضا بگیرن از هوا بگیرن میشه اگر دل پیدا میشه یک وقت می‌بینی که تصویر از هوا گرفتن الان اجازه ما نداریم که عتدادگی چه بیت حضرت محمد صلی الله علیه تصویر خود رسول الله صلی یا از صحابه باشه یا از, از علی باشه یا حضرت ابوبکر باشه یا حضرت باشه یا از عمر باشه یا از باشه این نگفته که نا که الا پدر کلانت نا گفتا. یا نگفت الا مولوی سے الا شیخ سے نه گفت که هر تصویری که باشه در اینجا ملائکہ <تصفح> از این خاطر بی بی ها این حدیث روایت میکنن که پیغمبر صلی الله علیه و وسلم گفت که ملائکہ در خانه داخل نمیشه که وجود تصویر است یکی از سوالایی که شد شده بوده که این بود که آیا درست است نماز در لباتی که عکس ها لباس تصاویر صلیب عباس مثلا این نفر نماز میخونه با لباسی که دو لباس عکس باشه جایز است دیگه اینج علما گفتن که لا یجوز لهو ان یصلی فی في ملابس فیها صور ذوات الارواح من انسان او طیور او اناح جایز نیست نماز خواندن در لباس هایی که در اون تصویر چیزهایی که روح دارن ذوات الارواح باشن انسان باشه یا تو پرنده ها باشند یا انعام یا حیوانات باشند یا غیرها من ذوات الارواح عکس هر چیز باشند ولا يجوز للمسلم اللبسها غير الصلاه یعنی <تصفح> مسلمان جایز است حتی پوشیدن این لباس ها بیرون از نماز یعنی در خارج از نماز هم ای اجازه نیست واتصح الصلاه من صلى في صور فيه صور مع الاسم في حق من علم الحكم الشرعي میگه نماز از این درست میشد لکن با همراهی نمازش درست میشه لیکن به انبایی گناه کسی که نمی بهمن. ولی انسان باید نپوشه این لباسها را چون پوشیدن از این لباسها در غیر نماز نارواح هست در نماز را باید به با طریق اولا باشه ایناله چیستن؟ ولیکن متصیح سالات من صلاح فی في ثومت فی سور في مع الازم فی حق من عالم حکم شرعی و فی جواب آخر عن عن لبس ساعت ام لا يجوز لبس الساعه ام صلیب لا في صلاه ولا في غيرها و همین قسم ساعتی که توی تصویر صلیب باشن یا تصویر زندجان باشن یا کمربند باشن متوجه هستین که تصویر داشته باشن کل از نه در نماز و نه در غیر نماز جایز نیست اما اگر نماز خواهم نمازش میگه درست میشه لکن گناهکار است و الواجب علیه و میگه واجب بالای انسان مسلمان چی به ازالت صلیب اگر تو یک پارچه را خریدی که در تصویر صلیب است که اوشه باید قطع کنیم قسمتی که صلیبه چرا لان همون شعار النصارى میگه خاطر ذی که اگر بدن انداختن صلیب یا مثلا خان خود یا لباس خود عکس صلیب نصب کردن این از علامات نصاریه ها هست ولا یجوز للمسلم ان يتشبه بهم و برای مسلمان جایز نیست که با اینها خود مشابه میسازند خب دیگر در لباس چی سنت است میگن در لباس از جمله سنت های لباسی است که انسان مسلمان وقتی که لباس می باید از طریق راست بپوشد یعنی مثلا اگر پیراهن می پوشه اول آستین را سر داخل بکنن چرا در این جمع کانا نبی صلی الله علیه و salam يحب التيمن في طهوره و وتناوله میگه پیغمبر صلی در طهارات خدا و در لباس پوشیدن خود در بود پوشیدن، خود چادر پوشیدن، در هر چیز چهره چی خوشدار که از راست شروع بکنن. کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحبب تایمنا فی شأنه کله فی نعله و فی رجله و ترجله و یعنی میگه در کلی از اینا چی داشت؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کل از اینا میگه چه داشت که انسان از طرف راست شروع بکنه از این در لباس پوشیدن، لباس نچه <تصفيق> هست. خب دیگه در قسمت لباس ها مستحب است پوشیدن لباس سفید یعنی اگر یک انسان مسلمان می لباس لباس رنگی بپوشه دیگه حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی میگه قال رسول الله صلی الله علیه و salam البسوا من سيا بكم البياضا من خير سيا بكم میگه شما از در جمله لباس هایتان لباس های سفید بپوشید چرا که بهترین لباس شماست و فيها و مرده های تانه کفن بکنین با کفن لباس سفید. این ای حدیث شریف هم روایتش کرده میگه رواه مسلم و مسلم روایت کرده در دو و, و از این خاطر در حدیث شریف دیگه پیغانا شده میگه البس من سیابی کم البیاده فا اینا اطحر و اطیب میگه لباس سفید بپوشین چرا که این بسیار پاک است و بسیار خوب است و کفی نوفی هم و مرده هایتانو هم ده این کفن بکنین دیگر موضوعی که در قسمت لباسها سر سرازو انسان بحث باید بکنن موضوع رنگ لباس است. از این خاطر پیغمبر سلام لباس که رنگ های زد و سرخ داشت اینه بر ها اجازه نمیدن حضرت عبدالله ابن عمر بن العاص را دیلاتاله عنه هما میگه که رعا رسول الله صلی الله علیه ثوبین معصفرین میگه پیغمبستم دید در جوان که دو لباس که زرد لباس های زرد در وجود منید که با رنگ زرد به زرد در فقال ان هاویهی ثیاب الكفار فلط البس ها نزی خاطر پیغمبستم گفته که این لباس های زرد که لباس های کافرا هست شما اینو نپوشین. و در وقت در لفظ دیگه چی میگه میگه رعا نبی صلی الله علیه ثوبین معصفر مگا برمد و لباس زرد فقال قال امو که امرت که به گفت مادرت گفت لباس ها رو بپوش قلت اغسلهم پیغمبر سلام صحابی میگه ما گفتم که میشو میشدن قال بعد احرق امو میگا پیغمبر سلام گفت نه بیخیت همین کالا رو در بدی و بده بعد دیگه حالا هم میگه گفت که مادرت گفت که این قسم لباس رو بپوش و خاطر از این میگا بر گفت که خانم ها زیاتر لباس های زردن خوش دارن از این خاطر حتی به اولادهای خود میگه او باید گفته که قسم لباس ها لباس زد اگر این لباس هست مفصوص خانم ها و زن ها هست تو مرد هستی تو باید این لباس ها را لپوشید و اهمی قسم در حدیث دیگه آمده که لباس های سرخ هم پیغمبست هم اجازه ندادن. خب ایناله یک کس سوال میکنم بگم بعد یک حدیث خواندم که پیغمبر صصم کار نبی وصلی الله علیه و سلم مربوعا و قد را فی خلته حمره ما را ایتو شین احسن منو واسه میگم ما دیدم پیغمبر صم که یک لباس سرخ پوشیده بود میگه شما میگین که لباس سرخ حرام و ناروا هست در حالی که این حدیث از بخاری شریف اومده 5901 که پیغمبر صم اج یک لباس سرخ پوشیده بود این علما چی میگن میگه اصلا شما باید وقتی که این دو حدیثم میخوانم که در یکیش نهی از پوشیدن لباس سرخ بر مرد ها و در حدیث دیگه اومده که پیغمبر صلوات الله علیه و سلام خوشب لباس سرخ پوشیده است میگه این دو حدیث علم حدیث شما سایگون و علما درباره باریش تحقیق میکنه میگه او لباسی که پیغمبر صلی الله علیه و سلام خوشو سایگون ا یعنی دو قسمی لباس است یکی لباس سرخ خالص که مثلا این نفر بر تا که سرخ بخره خالص به بپوشه این است از این معناست اما بعضی چفلا هست تو خطهای سرخ سرخ داره از این قوله می پیغمبر ص میگه مرید بدون او لباس، بدون لباس که پیغمبر ص پوشیده بود یا چپان را پوشیده بود، اون خطهای سرخ داشت در حالی که لباس سوس بود یا سیاه بود، لکن خطای چی داشت؟ خطای از این خاطر اگر خطای سرخ میداشته باشه، میگه او پروانه نمی کنه. این تحقیق علما در قسمت این حدیث شریف است. خب دیگه مسئله کی مستحب است برای ملل مسلمان و زنان مسلمان در خانه استفاده از عطر است. دیگه پیغمبرش سما حضرت انس برداوت میگه میگه ما مسس تو حریران ولا دیباژن علیه بمن کف نبی صلی الله علیه و سلام میگه ما هیچ حریر یعنی حریر دیباجی را اللهم میگه که یعنی حریر ابریشم یک قسم ابریشم است و دیباج یک قسم ابریشم است یک ابریشم سخت است یک ابریشم نرم است یکی مگه من هیچ حریر یا دیباجی را ی میرم مثل نکردم که او نرمتر و زیباتر است های دوست در رسول الله صلی الله علیه و نرم و زیبا بود و م... ولا شمم تو ریحان قط او عرقا قط اتیم من ریح او عرق نبی صلی الله علیه و هیچ وقت من کدوم بو یا عرق را مگه من استشمام نکردم که او زیباتر از بوی عرق و بوی پیغمبر مس یعنی از این معلوم میشه که حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم همیشه از عطرها استفاده میکردن و عطرهایی که چه مثلا مسک میگفتن یا تیب میگفتن از اینا پیغمبر صاحب استفاده میکن از تا که در قسمت عطر ایراد از علما بعضی ها میگن که احتیاط بکنین در عطرهایی که خصوصا از کشورهای خارجی اون فرانسوی جامعه یکسان در سر از بحث باید ولا مو تحقيق آدم باز بودا تحقیق میشه وقتی گویا که ایتای خارجی میاد بعد از زیاد زیاد میگن که چی هست در شراب یا چی هست شنو اینقدرم چیز میگم الکل خب دیگر از خاطر اگر انسان عطر بزاره در لباس های خود این خوب است و سنت پیغمبر صلی الله است لکن برای زن های مسلمان اجازه نه بر زنها حرام است که از خانی خود با عطر زدن زن توی از خانه خود که برامد عطر نزنند خواب. موضوع دیگه که اینجا سرش برادرها هم زیاد چین میکردم گفتم که شرایط لباس بر ما بگوین خب شرایط لباس اگرچی من یک درس در قسمت لباس خوهرها گرفته بودیم و در قسمت لباسم هم درباره سطر عورت یک درس خالد داشتیم اینه سرش بحث میکرد در آیده ها یک درس در باری سطح عورت خود داشتیم ولی در قسمت لباس ها علما که است اینجا آلما چند شرط گفتم که مختصران بر تانمهی که مگشید در بسیدی های دیگر هم در, مس... در بسیدی خطاب و خواهران مسئله لباس خانم ها را تشریع کرده مثل مرد ل... لباس ها که شرط داره شرط چیه که لباس که بر مرد زن بعض شرایط هست که بر کل یام هست و بعض شرط است که مخصوص خانم ها میشه بر مرد ها شرط است که لباسشان اول نازوب نباشند. نازک چی مان لباس اس که مثلا اساس لباسه است که بعضی کسا پوشند که مثل چادر گاچ چادر گاچ اینا خود شما ببینید چادرای نازکی هستند وقتی که یا وقت گیره یک خانم بخواید ستر بکنن یا مثلا بخواید که روی طرفو پات بکنن روی انسان چت معلوم میشه مویشو چت معلوم میشه از پشت چادر گاچ یعنی پوشیدن چادر گاچ اگر یک کسو پوشه اگر ما ببینیم چت تو مقابل از این خاطر چادر گاچ که خانم های می میپوشن اینا باید متوجه باشن که نمازشان هم قدید چادرهای گاچ نمیشن به خاطر گبرتشان ساتر سطر نمی کن لباس و چادر گاچ و آستین گاچ بر یک ذر مسلمان نارواه هست و خاطر از که در جمله‌ی کاسیات و ناریات می در خطاب با خواهرم این تشریع کردیم مفصل هم سریع زیاد بحث نمی و آمرداها هم نباید لباسشان نازک باشه، بعضی کسان می نازک که استاد میشن، اعضای بدنشان یا عورتشان معلوم میشه. واسه خوارم ما کردنشان معلوم میشه. میایشان استرسی چقدر کج، استیکای نازک معلوم میشه. در مقابل نامخنما استاد میشن، باعث اینا با هیچ جا گفتن نمیشن. شرط دوم لباسی یه که لباس باید کوتاه نباشن مزور ما از کوتای چی ماست؟ یعنی از انداسی عورت کوتاه. یعنی مردها خوشت پیشان کانوشان لباسشان ریزه هاشان کوتا باید باشند مانا... تو کوتا نگه بیخی نیکره اگر پوشند نه کوتا مانایش کوتا نباشه یعنی کوتا باشه و کوتاه هم نباشند از اندازه سطر عورت باید کوتاه نباشند این شرط لباسه و در مجموع لباس مدها باید کوتا باشه یعنی بسیار لباس های درها حاضراز کرد تا تا کوری های پایشان برسند و وضعی از کسایی که مود میکنند و افتخار میکنند بازی ما متکبر است که تنبارانشون پاشای کلام کلام جور میکنن و بازو صاحب زمین اجاره میکنن ای بر مردها نارواه هست بنا و بر خانم ها به درجه اولاست که خانم ها باید لباسشون همیشه تایل باشن و اگر لباس کوتاه بشه و عورتش معلوم میشه مثل نیمه سینه پوشیدن بعض خانم ها میپوشن بعض خواهر ها میپوشن ای برشان نارواس از نگاه شریعت اسلامی درست نیست دیگه لباس چست است. لباس چست هم بر متن ناروا هست و هم بر زن از این خاطر بعضی پالتونای کابوی که اعضای بدن انو نشون میده بعضی پالتوناست که بسیار چسب است، پی برای مردها هم نراوا هست و برای زن ها هم نراوا هست. هست. یعنی شرط لباسی است که در بدن چسبیده نباشد. باید بین لباس و بین بدن فاصله باشد. دو انگشت، سی انگشت قرار باشد انگش، که در بدنش چسبیده نباشد. یک مثلا این پالتونا که مثلا بعضی پالتونا رو میپوشن که بسیار چسب است، پاشویش بسیار تنگ است که حتی شاید یک دالکاپوله کش کنه تا که او و برای خانم ها هم این ناروه هست نه بر مرد مسلمان اجازه هست که لباس چسب بپوشه و نه هم برای زن مسلمان اجازه هست که لباس چسب بپوشه که اندار نشان نشانه بده اما باز لباس زن ها بعض شرط های دیگر هم هست که مثلا در قسمت رنگ ها برای مرد ها خود گفتیم که رنگ های سرخ و زد متحر حرام است لکن در زن ها رنگ هایی که جذاب باشد در خارج از منزل ناروا است اگر خانم در خانه خانی لباس سرخ می پوشد یا زرد می پوشد یا زری بسیار تیز می پوشد در داخل خانه خوشاوارش است عزا و فرموش است اما وقتی که از خانه بیرون می راید ولی زن مسلمان اجازه نیست که لباس های جذاب بپوشن همین قسم مثلا بودهایی که صدا دار است بودهای صدا است ولی زن ها حرام است ناروا است تق تق کلامی توشان بر و صدایشان مردم بشنواند و برای مردها هم و بعض بچه ها هم عادت دختارها رو گرفتن تخت تخت تخت تخت تخت تخت تخت میکنن یعنی اگرچه برای مردها ها پروانه میکنن لیکن برای زن این نوره و مطلقا در رواید آمده که در قسمت گوتهای خود ایده امراض بکنن دیگر مسئله عطف است که در لباس عطف باید چیز نکنن عطر نظرن و در لباسهایشون وقتی که خارج از خانه میشن و دیگه آرایش وقتی که میکنم خانم، آرایش آرائش مثلا رویش آرائش بوده باشه و یا آرایش کرده باشه در خارج از منزل اجازه نداره که با آرایش خارج جدن یکی از سوال دیگه از برادمای ما خوب یارم از شو دیگه, دیگه تشریق کردیم تکرار بردان چیز نمیکنم چون میشه انتقاد میشه از طرف دوست های ما جان ساد تکرار هست، ما گفت او روز، من کفت به بعض تکرار مگرم، من خطور نمید بیرخست کارست، تکرار هست، تکرار هست، الحمدلگر صبح هم میخوانی، پیشین هم دیگر هم میخوانی، دیگر هم میخوانی، خیلی ما زیاد کفتن بیریم که تا که در گوش مردم خوب جای وجای شد دیگه یک سوال دوستا کردن که مثلا مشابهت در لباس با غیر مسلمان ها, با غیر مسلمان ها. سوال ازی ها تو میگه بعضی کساس نفتایی می پوشن و درشی می پوشن و مثلا کره اوندوها را دارست می کنن بعضی ها سریب را دارست اینی چیزها را میکنن؟ در قسمت ازی سوال کرده در جواب ازی سوال من نظریات و بعضی را مطالعه کردم خلاصیش که والله و اعلم دیگر خلاصی ازی این قسم برم شد که در قسمت نباسی از با مسلمان ها دو قسم نباس مشابه هست. یکی لباس است که مخصوص دینشان است. لباس مخصوص دین است. لباس مخصوص دین است. و یکی لباس است که مخصوص دین نیست، اما فرهنگ و رواج غیر مسلمان‌ها است. در قسمت لباس که مخصوص دینشان است مثلا لباس زرد که می میپوشن، اگر یک کسو لباس زرد بپوشم، خاطر خل... خل... خل... متوجه واقعاً من. خیر بانی متفهمم. البته در قسمت لباس قسمت که دینی هست اگر اون را کسی می پوشه و می فهمم که صلیب به گردن می بنده یک صلیبی تو رو می میگه او به یام مسیحی است یا مثلا اون دو رو استفاده میکنه میگه والا یام چی هست اون دو هست در قسمت علما گفتن که اگر کسی لباسی که مربوط به دین از اوناست می پوشن و می فهمم و قزنی را می پوشه خدای ناخواسته میگه به کفر میرسه اما لباس دیگه هست که مربوط به دینشون مربوط به است اید انسان باید از باب مخالفت نپوشه. خالف المشرکینه، ما مشرکین مخالفت کنیم. اما اگر یک کس میپوشه، گناهکار میشه. اما کافر رو ما گفته نمیتونیم. لکن از باب مخالفت باید با ما اکتفاده قسمت مخالفت بکنن یعنی نکتای مخصوص مسلمان ها هست. لکن در بعضی از کشورها، بعضی اولام میگن که چون در بعضی از کشورها لباس رسمی شده، و اونجا مجبورش هنده ای سازن خود کس در ترکیه یا در مصر یا در اینجا هست. لکن در یاد ایران لباس لباس رسمی سگ نکتی نداره شبش میگی نظم امرات نمیکنه اوجاست لکن در مجموع اگر انسان بتونه از لباس های غیر مسلمان ها که مقتدی فرحمیشان از اسباب مخالفت با و غیر مسلمان ها را اجتناب کنه این خوبتر خوب است سبحان ربیک رب العزت عما یسئون و سلام علی و الحمدلله رب العالمین الله ما جنلنا لیدین استمیرو قولا و سابین احسن احسنا